فصل سیزدهم. در دوران کودکی و جوانیم زندگی من با پدرم مانند زندگی کسی بود که در قایقی روباز در میان دریا با انواج دست به گریبان باشد این امواج که هر یک از لحاظ زمانی در حدود پنج سال با هم فاصله داشتند دورانهای خلاقیت و آفرینندگی پدرم بودند که در هنگام ساختن فیلم آیش به اوج خود می رسیدند. فیلمی فیلمی پدرم عبارت بودند از روشنایی های شهر، اصر جدید، دیکتاتور بزرگ، موسیو وردو و بالاخره لایم لایت یا روشنایی صحنه درباره فیلم بعدی پدرم به نام سلطانی در نیویورک که آن را در اروپا تهیه کرد نمیدانم بعض حال از چه قرار بوده است؟ اما گمان میکن آن را هم با همان تمرکز اندیشه و شدت کاری که فیلم های دیگر را تهیه کرده بود تهیه کرده باشد. وقتی پدرم کار می کند، تمام علائق خارجی از جمله علائق خانوادگی، قربانی و لنگت مال خلاقیت او میشون. این دوران خلاقیت به سرعت به اوج خود میرسد و سپس با شدت فروکش می کند و او را خست و کوفته برجا میگذارد. خود او گفته است که بعد از اتمام یک فیلم ناچار است حداقل برای یکی دو روز در بستر بخوابد تا احساس آرام بگیرد. اما تنها پدرم نبود که در چنین مواقعی خست و کوفته برجا می ماند. همه یک کسانی که در این موقع با او همکاری می کردند و مربوط بودند، چه در استودیو و چه در خانه خسته و کوفته می شدند. آری. زندگی کسانی که کمال طلب هستند در دوران خلاقیتان ها چانین است. البته، هنگامی که نابقهی در خانه شما زندگی کند، نباید انتظار داشته باشید که همه چیز طبیعی باشد. من و از تا هنگامی که بزرگتر شدیم، تمام زندگی خود را وقف این وضع کرده بودیم. دوران کم و را که من در فصلهای قبل بیان کردم، دوران بین دو موج خلاقیت بین روشنای های شهر و عصر جدید بود. این دوران اگر حوادث گذشته و آینده آن را در نظر نگیریم، به طور نسبی آرام و آسوده بود. بیش از دو سال طول کشید تا پدرم توانست سناریوی فیلم عصر جدید را آماده کند. تقریباً بلافاصله بعد از سفرش به خارجه در 1932 شروع به تهیه این سناریو کرده بود. او همیشه کان پیش میرفت و در اوایل اغلب پیشرفتی محسوس نبود. او حتی بیش از آن که دیکنز نویسنده به بازی کردن در نمایش علاقه داشت، به نوشتن علاقه مند بود. پدرم یک بار به من گفت که او برای آنکه دائم در کار و تمرین باشد، روزی 500 کلمه درباره یک موضوع یادداشت میکرد. اما وقتی که من و سیدنی برای اواخر هفته به خانه می سناریوی سیناریوی اصر جدید نوشته می و قرار بود در اکتبر سال آینده شروع به فیلم برداری از آن شود. هرچه افکار جدیدی به مغز پدرم خطور می کرد و مقدار این افکار بیشتر می نوشتن او سریتر می کردید و مقدار بیشتری از وقت خود را به این کار اختصاص می داد. من و سیدنی کم کم با این تمرکز عجیب کار و توجه به افکار خیش که زندگی را بر میلدرتریس و مادرم سخت و ناگوار ساخته بود، آشنا شدیم. حالا دیگر وقتی ما از مدرسه به خانه می‌آمدیم، پدرم پایین به اتاق نشیمن می‌آمد. ظاهراً برای آنکه حال ما را بپرسد. اما اکثر اوقات فکری در فیلمش به خاطر او میرسید ما را فراموش میکرد و سر میز به کار خود برمیگشت و به نوشتن میپرداخت اولین بار را که ناگهان در این موقع به سر وقتش رفتیم خوب به یاد دارم یک روزه بعد از ظهر جمعه بود ما توی اتاق دویدیم و فریاد گفتیم پدرجان تاسه چه خبر؟ و انتظار داشتیم که او هم مثل همیشه با شادی به ما جواب بدهد ولی او فقط سرش را با اخم بلند کرد و خیده به ما نگریست و سرش را تکان داد و با لحنی خوشک یک نواخت گفت مزاحم من نشوید مزاحم من نشوید دارم کار میکنم بروید بروید با دوستانتان بازی کنید و با تکان دست در اتاق را به ما نشان داد. من و سیدنی که از حیرت خوشک زده بود یواشکی بیرون آمدیم و اندکی نارضایتی از هم می پرسیدیم، بابا چش بود کمی اینور و آنور زدیم و نارضاییمان فروکش کرد اما من در فکر او بودم که پشت میز نشسته سرش خم شده عینک دور قهوه‌ایش را به چشم زده و مدادش به سرعت روی کاغزهای زرد و خطدار دفتر یادداشتش می میرفت من یواشکی به اتاق برگشتم و از در سرسرا نگاهی دزدکی به داخل اتاق انداختم پدرم هنوز کار میکرد یکبار دست از نوشتن برداشته به آسمان خیره شد و با انگشتانش بالای دفتر یادداشت را نوازش کرد. بر چهره او همان حالت مجذوب و مهربانی دیده میشد که در موقع غذا خوردن در او دیده بودم او با دفتر یادداشتش چون چنان رفتاره حاکی از اشخه علاقه داشت که گویی چیز دیگران به مثل یک ورقه خطی نایاب قدیمی است من با تردید همانجا در آستانه در ایستادم اما او حتی نگاهی به من نکرد یوشکی توی اتاق رفتم نشستم و منتظر شدم پدرم دوباره به نوشتن پرداخت سپس کارش را تمام کرد سر پایات و در این موقع من را دید بعد ناگهان دفتر یادداشتش را برداشت شتاب زده به طرف من آمد و رو ایستاد روی مثل اینکه توقع داشت که من در تمام مدت آنجا بوده باشم و ساکت انتظار کشید و خوشی او را آرزو کرده باشم. با صدایی بلند گفت: «چارلز خیال میکنین این چیست؟ این سیناریوی فیلم آینده ای من است. و پیش از آنکه من فرصت گفتن چیزی بکنم شروع به توضیح و تعریف کرد. افکارش را به صدای بلند بیان داشت و همچنان که نوشتی فیلم میجاب میکرد آن را بازی کرد. مثل اینکه گروهی تماشاچی جلوی او نشستهند. پرندگان نخم سر میدهند. بیشه ها ساکت و آرام خواهند بود و در این میان مرد کوچلو پدیدار خواهد شد. وقتی حرفش رو تمام کرد مشتاقانه از من پرسید خوشت آمد و بعد چون که گویی درباره اثر شخص دیگری صحبت می کند افسود چیز قشنگی نیست من فوری جواب دادم اثر عظیمی است من فقط در این فکر بودم که پدرم یکی از آثار خود را برای من خوانده و عقیدهی مرا درباره آن پرسیده است من هم در این کار بزرگ نقشی داشتم وظیفه ی گوش دادن از آن پس وقتی پدرم کار می کرد، اغلب من در همان اتاق می نشستم. گاهی بیرون می رفت و قدم می سد. سرش خم بود و در میان جاده های پیچ در پیچ تپه راه می رفت و با اندیشه های خود به کشمکش می پرداخت در این مواقع من و گاهی هم سیدنی دنبال او می رفتیم و فقط منتظر آن لحظه باشکوهی بودیم که پدرم ناگهان برمیگشت چشمانش میدرخشید. و صدایش از شادی دپرییز بود تمامش کردم بچه، حالا گوش کنید. پدیده دیگری که من و سیدنی با احساس ناراحتی فراوان از آن اطلاع یافتیم فراموشکاری و از خود بیخود شدن پدرم در این دوران بود. ما اجازه می گرفتیم که کاری انجام دهیم و وقتی شروع به انجام آن کار میکردیم پدرم که همیشه سر قولش بود بدون اینکه اختار و یادآوری به ما بکند از جا در میرفت و بعد که میفهمید وعده خود را فراموش کرده است غم زده میشد. این جریان هم در زندگی بی اتمینان خالی ما مزدید بر علت شده بود من و استیدمی به زودی برای حفاظت خودمان از خشم او یاد گرفتیم که علائم خلق و خوی او را بفهمیم و رفتار خودمان را بر حسب آن تطبیق بدهیم پدرم موقعی که سرحال بود آواز میخواند. چه جور هم آواز میخواند؟ قطعاتی از اپراها از ترانه های محبوبش و هایی از زمانی که در تئاتر کار میکرد میخواند تا آنجا که یادم یاید، یکی از های مورد علاقه او چیزی شبیه این بود آه از آن شب هلاکت بار که همسرم دیوانه شد وحشتناک و ناآرام این جایش صدمه دید در این موقع همیشه به سر خودش اشاره می کرد. خیلی بد بود، بد بود، بد بود. در نیمه های شب، ملافه را به خود می پیچید و در اخت خواب من قدم می و می خوند. هملت. هملت، هملت، من روح پدرت هستم. او همچنین دوست داشت آهنگ های ساختی خود را بخواند؟ یکی از آهنگ های محبوبش، آیا گل های قشنگ مرا می خرید از فیلم روشنایی های شهر بود. او زیر دوش آواز می‌خواند وقتی داشت حاضر می‌شد که موقع اصر از خانه بیرون برود آواز می‌خواند همه جای خانه می‌شد او را در حال آواز دید. پایین پلکان و حتی در خارج از خانه و نوک تپه در این مواقع خیال من واسید نیرواحت می‌شد و می‌فهمیدیم می که تعطیلات آخر هفته را به خوشی خواهیم گذراند گاهی اوقات هم روزهای اندوه باری پیش می‌آمد در این روزها پدرم دوچاری یکی از آنکش کش خلقه های مخصوصش می‌شد که هر کس با او آشناست آن را میشناسد. پدرم هرگز عادت نداشت با خودش حرف بزند مگر اینکه سطوری را که چند لحظه قبل نوشته بود با صدای بلند برای خودش میخواند. وقتی در حالت افسردگی بود همیشه آرام نمی‌نمود. هر چیزی حتی نوشته غم‌انگیز یک روزنامه ممکن بود این حالت را در او ایجاد کند. اما معمولاً وقتی این حالت افسردگی به سراغش میآمد که او احساس میکرد قدرت خلاقه او را ترک کرده است و بیهوده منتظر پیدایش افکار و اندیشه هایی در مقصخیش میشد. در این مواقع چنان مینمود که دست و پابسته در سیاه چال تاریک فکر محبوس شده است. مداد از حرکت می استاد و صفحه کاغذ زرد رنگ بی استفاده می باند. گاهی اوقات در این حالت قدم میزد ولی پاهایش چالاکی عادی نداشت خود را در واقع به روی زمین میکشید گاهی اوقات جلوی پنجرهٔ اتاق میایستاد کوچکترین حرکتی نمیکرد به بیرون خیره میشد دستهایش را به پشت سر میگذاشت و با انگشتهای یک دست پیوسته به مچ دست دیگرش میکوبید یا اگر نشسته بود با همان شیوه نا دستش را به زانبانش میکفت. در این مواقع اگر ما وارد میشدیم ما را نمیدید و اگر خارج میشدیم صدای پایمان را نمیشنید. بالاخره پس از مدتی طولانی که غرق در خود بود حرکتی میکرد و تلسم شکسته میشد. شفای این حال افسردگی ساده بود. فوراً یکی از دوستانش را میخواست و با او دوسه دور تنیس بازی میکرد. من در حال حاضر نمیدانم شکل و حرکات پدرم چجوری است. اما در آن دوران تماشای بازی تنیس او لذت بخش بود. با دست چپ بازی میکرد. پدرم در همه چیز به جز نوشتن چپ دست است و چنان لطیف و آرام بازی میکرد که گویی یکی از پانتومیمهای خود را اجرا میکند. پدرم نه فقط هر روز بعد از سر در خانه تنیس بازی میکرد بلکه در هنگام سفر هم تنیس یکی از سرگرمی های او بود. پدرم ساری دوبار به نیویورک میرفت. در این سفرها معمولا تیم دارد که سابقاً در آن حوالی میزیست همراه او بود. گاهیقات با لباس تنیس سوار ترن میشدند و به محض اینکه به شیکاگو می رسیدند در همان توقف پدرم با تلفن جایی پیدا می کرد و به بازی تنیس می پرداخت. دور بازی می کرد و دوباره سوار ترن می وقتی به نیویورک می باز وز از همین قرار بود. او در یوکلا بقامت می کرد و همچه که مستقر می شد، سراغ زمین تنیس می رفت. همان مفهومی که مشروب الکلی روابط جنسی و مذهب برای بعضی ها دارد، تنیس برای پدرم داشته و دارد. مثل اینکه که آسودگی اسرارآمیزی در تنیس نهفته که او در جستجوی آن است. من او را بارها دیدم که اوقات تلخ و افسرده خود را به زمین تنیس رسانده و به بازی تنیس مشغول شده است. اما با اولین برخورد توپ به تور ناگهان خلق او عوض شده است. چالاک و خوش حرکات شده و حواسش را متمرکز کرده است. چون برای او غیرممکن بود که در عین حال هم به بازی تنیس توجه داشته باشد و هم به تیرگی درون روح خود بنگرد. وقتی بازی تمام می آن تیرگی درونی به کلی برطرف می و پدرم به قالب قدیمی خود می رفت، به خصوص اگر بازی را برده بود. پدرم معمولا خودخواه و خودپرست است. اما آنها که دوست نزدیک او هستند می که این خودپرستی در واقع سرپوشی بر روی حساسیت خارقل عاده اوست. یک کلمه و یک حرکت ممکن است او را به خدا برد ترس از اینکه قدرت خلاقهاش او را برای همیشه ترک ممکن است او را در ارماق افسردگی اوتبر سازد در چنین مواقعی بردن در یک دور بازی تنیس روحیه او را بالا می آورد. دوستانش که معمولا سر پول با او بازی میکردند در این موارد شرط کلان نمیبستند تا بگذارند او ببرد چه روزهای ملایم بهار بیشتر به تابستان داغ کالیفرنیا نزدیک میشد تغییر حالت پدرم محسوس تر میشد. اوقا تخیش نمایان تر و لحظات خشمش فراوانتر میشد. حالت انتظار و نگرانی همه اهل خانه را فرا می گرفت. همه ما آماده چیزی میشدیم. گویی پدرم از ما لشکری ساخته بود و آماده حمله و نبرد میگشت ترس از شکست که همواره خاطر طالب کمال را آزرده نگه می‌دارد چون خوره روح او را می‌خورد. سناریوی او نزدیک به اتمام بود. حالا وظیفه دیگری به عهده گرفته بود. پولت دارت را برای نقشی که با در فیلم می‌فهمی می‌کرد می می‌داد. من آن روزهای درازی را که آن دو با هم می‌گذراندند، یا در اتاق نشیمن یا در زمین تنیس همواره با هم بودند، به خاطر دارم. این اولین نقش بزرگ سینمای بالت بود و وی از این بابت سپاسگزار پدرم شده بود. پدرم هم در نقش معلم از خود شکیبایی نمایانی نشان میداد. اما آنچه پدرم را به کاروامی داشت تنها لذت آموختن و تعلیم نبود بلکه چیزی اساسی تر از این بود این تصمیم راستخ او برای رسیدن به کمال بود او و پولت صحنه ای را بارها تکرار می کردند تا اثری را که دلخواه پدرم بود در بیننده به وجود آورند پولت دستآموز بود و آنقدر بازی می کرد که از خستگی نزدیک بود به زمین بیافتد اما پدرم هرگز از خود خستگی نشان نمیداد تا آنجا که من به خاطر می آورم. اگرچه پدرم در موارد دیگر بسیار از جا در می رفت، هرگز نشد که بر سر پولت عصبانی شود یا صدایش را بلند کند اگرچه بارها مجبور میشد بازی صحنه معینی را با او تکرار کند او اعصابش بیش از آنکه ممکن بود در اثر عصبانیتی ناگهانی فرسوده شود فرسوده میشد. و پدرم مطلقاً حاضر نبود چیزی را که اندکی با کمال و با بهترین بازی تفاوت و فاصله داشت قبول کند، اگرچه این تفاوت در حرکت دقیق یا حالت چهری نامحسوس نهفته باشد. شاگت پلت: در خواب هم این جمله را که پیوسته پدرم به او میگفت میشنید. دوباره بازی کن، دوباره بازی کن. گاهی پولت از اینکه میدید نمیتواند آنطور که باید بازی کند به گریه میافتاد و میگفت اوه چارلی من هنرپیشه نیستم اصلا هنرپیشه نیستم و من و سیدنی که از نهانگاهی ناظر این صحنه بودیم دل مان میخواست برویم و از او پشتیبانی کنیم و از چنگ تعلیم بیرحمانهٔ پدرم بیرونش بیاوریم زیرا پولت در حالت عادی چنان شاداب و جوان و شبیه ما بود که نمیتوانستیم قصه داشتن او را تحمل کنیم. به یکدیگر می گفتیم و اصلا نباید هم در بازی کامل باشد. آنقدر قشنگ است که هر کاری میتواند بکند. اما پدرم با این اخیده ما موافق نبود. با سرسختی روزها و هفته های پیاپی کار میکرد تا آن دختر کوچولوی فیلم اصر جدید را به وجود آورد.